حکایت رفیقی داشتم که سالها با هم سفر کرده بودیم و نمک خورده و بیکران حقوق صحبت ثابت شده، آخر به سبب نفعی اندک آزار خاطر من روا داشت و دوستی سپری شد و با این همه از دو طرف دلبستگی بود که شنیدم روزی دو بیت از سخنان من، در مجمعی همی گفتند، نگار من چو در به خنده نمکین، نمک زیاده کند بر جراحت ریشان. چه بودی از سر زلفش به دست افتادی چو آستین کریمان به دست درویشان، طایفه درویشان بر لطف این سخن نه که بر حسن سیرت خیش آفرین بردند؟ و او هم در این جمله مبارغه کرده بود و بر فوت صحبت قدیم تعاسف خورده و به خطای خیش اعتراف نمونده. معلوم کردم که از طرف او هم رقبتی هست. این بیتها فرستادم و صلح کردی. نما را در میان اهد و وفا بود. جفا کردی و بد هدی نموندی. به یک بار از جهان دل در تو بستم ندانستم که برگردی به زودی آنو سفتگر سر صلح است باز که از آن محبوبتر باشی که بودی